می رسیم به سوره انشقاق این هم موضوعش همین موضوعی گذاشته هست قیامت هست در سوره تطفیق بیان شد که شما به جاهای خاصتون یا علیین هست یا سجین میروید با هیچ از اونجا خارج نمی شوید در سوره انشقاق علی سبیل ترقی می فرماید لترکبن طبقاً ان طبق یعنی به هر جای قرار بگیرید اونجا درجات مختلفی هست درجه یکی از یکی بالاتر مثلا اگر در جهنم باشید الا یاز درجه یکی از یکی بالاتر یعنی پایینتر جهنم قرار میگیره بدترین جایش قرار میگیره اما اگر در بهشت باشید جایگاه یکی از یکی رفیتر بهتر لذا همیشه تشویق هست یعنی کار کنید آماده بکنید خودتون را اذا سما این وقت نفخه دوم دو رخ میدهد وقتی که سور دمیده میشه سور دوم دو اذا سما ان وقتی که آسمان شکافته میشه پاره پاره میشه و اذنت لربها و حقت چرا این کار میکنه آسمان چون گوش کند دستور رب را و حقت و سزارس گوش کند یعنی تبعیت میکنه خدا بهش میگه که تک تک به صورت تکوینی و اید الارض مدت وقتی که زمین چی میشه کشیده میشه زمین را میکشند هرچی که در شکم زمین تخلیه میشه هرچی بالا و پایینی هست در زمین همین ها صاف میشن و القط ما فیها و تخلت و می اندازد آنچه که در زمین هست یعنی هرچی جسد هست هرچی مرده هست همه را بیرون مندازد و و تخلیه میشه زمین و اذنت لربها وحقت و گوش میکنه زمین گوش به فرمان پروردگارش میشه وحقت و, و سزاوارن گوش کردن هست لذا یه روزی میاد که این احوال برای انسان میاد حال الله عزوجل انسان را خطاب میکند یا ایها الانسان انک کاذح ایل ربک قدحان فملاقی این در واقع ترغیب هست بسیار اعمال صالحه. ای انسان همانا تو تلاش میکنی کادحون، اجاهدون، ساعن سعی کننده هستی، جد و جهد کننده هستی، بسیار تلاش میکنی انسان. تلاش کند چه بخواهد چه نخواهد ناخداگا به سوی پروردگار داره میره شما کاری نیکی میکنید هر شب و هر روز نماز میخونید ولی دارید کم کم میرید به سوی پروردگار یک انسان فاسد شب و روز داره فساد میکنه با همین شب و روز فسادش داره به طرف خدا میره لذا الله میفرماید انک کاذهن الی ربک کدحا ہم انا شما تلاش کننده هستید در حالی که الی ربکا الی لقاء ربک بملاقات ربت کدحن تلاش کردنی فملاقی پس عاقبت او را ملاقات می عاقبت در دربار پروردگار حاضر می وقتی که حاضر می از دو حال خالی نیست فَأَمَّا من اُوْتِيَ کتابه بِيَمِينِهِ اما اون انسانی که نام اعمال داده بشه بدست راستش فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا اون انسان حساب گرفته میشه ازش حساب آسانی اون انسان آخرتش آباد حسابش آسان وَيَنْقَلِبُ الَا اهلی مَسْرُورًا بر میگردد پیش اهل و ایالش در بهشت بر میگردد مَسْرُورًا شادان خوشحال خوشحال میگه خدا آسان کرد بر من وراحت میشه وَأَمَّا مَن اوتیه كتابه وراء ظهره. اما من اوتی یا کتاب و اما اون انسانی که نامش داده بشه پشت سرش پشت سر یعنی چی؟ بعضی میگویند که نام عمل به دست چپ داده میشه اما از شکم پاره میکنند کنند و از دستش پشت اونجا قرار میگیره. اما بعضی می نه معنا این نیست. شما قبلا خاندید کسی که نامه اعمال به دست راست قرار میگیره او اعلام میکنه ها او مقره و کتابی، بی کتابیه بیاید کتاب منو بخونید اما اون کسی که بد باشد نامه اعمال رب دست چپش میده اون شرمنده اون پشت سر نگاه نمی سعی میکنه هیچکی نبیند لذا الله فرمد و اما من اوتیه کتابه وراء ظهره اما هر اون انسانی که داده ویشه کتابش پشت سر فسوف يدعو ثبورا ان قریب اون مرگ را صدا می کند میگه مرگ زودتر تربیت کاش بمیرم کاش می و ویسلا سعیرا این انسان داخل جهنم میشه، داخل اون آتشی میشه که شعل میزنه چرا انه كان في اهلی مسرورا همانا این انسان در دنیا در میان اهل و عیالش خوشحال بود مگه خوشحالی جرمه مسرورم،, مسرورم به معنی مطلق خوشحالی نیست به معنی بیغم بودن هست انسان در دنیا که غم باشه فقط به فکر عیش و عشرت و خوشگذرانی خودش و زن و بچهش باشه این دیگه بیغم است غم آخرت در دلش نیست وقتی که بیغم باشه نماز نمیخونه بیغم باشه زکات نمیده بیغم باشه حج نمیره لذا هیچ کاری برای خدا و برای آخرت انجام نمیده. انه كان في اهله مسرورا همانا این در اهلش خوشحال بود بی بود انه ظن الی حورا ان الا بی غم بودنش است همانا او گمان میکرد الی هرگز بر نمیگردد لی حورا یعنی لن یرجع حیان. هرگز دوباره زنده نمیشه بلا چرا زنده نمیشه ان ربه کان به بصیرا همان ربش نسبت به بی او بیناست فرور دیگر همی چیز را می فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق الله تعالی انجا سوگند یاد میکنه برای احوال قیامت سوگند یاد میکنه فلا اقسم بالشفق سوگند بالشفق شفق اون سفیده ای را میگویند بعد از این خورشید غروب میکنه در قسمت مغرب شما اون را مشاهده میکنید اون شفق به یک حال نمیمانه گاهی قرمز گاهی سفید میشه دوباره سیاه میشه گم میشه ناپدید میشه و الیل و هم قسم به شب و ما وسق که شب در بر میگیره ببینید شب هم یک حال نیست شب اول کمی تارید بعد بیشتر تاریک میشه بعد چادر شب همه دنیا میفته خیلی تاریک میشه پس ببین احوال مختلفه والقمر اذا تسق همچینی ماه وقتی کامل میشه ماه هم یک حال نیست اول خیلی ضعیف و نحیف و لاغر مثل یک شاخی که میخطبش کنه بعد بیشتر میشه بیشتر میشه بیشتر میشه تا آخر ماه کامل ماه چارده میشه پس ببین هر سه چیز را که خداوند ذکر کرد هم شفق، هم شب هم ماه یک حال نیست احوالشون متفاوته همچین احوال شما انسان ها چه در بهشت باشید چه در جهنم باشید متفاوته لترکبون طبقا ان طبق یعنی سوار میشید منظور قرار میگیرید بر طبقی از طبق یعنی بر حالتی از حالت بعد یک حال از حالت قبلی سخت یا یک حال از حالت قبلی آسان بستگی داره خوب باشی یا بد باشی والمعنی لترکبون احوالا بعد احوال شما بر احوالی بعد از احوالی قرار میگیرید که هی طبقاتون فی بعضها ارفع و هی الموت و بعده و ما بعده من احوال القیامت و احوالها احوال مختلف یکی از یکی سختر انسان تو قبر اون, اون همه سختی می بیند شما انشاءالله در سور یاسین می اون همه سختی می بیند بعدا وقتی که روز قیامت از قبر بلند میشه وحشتی که اونجا هست میگه من بعسنا من مرقد نحاز از اون خوابگاه و آرامگاه کی مربی بیدار کرد یعنی اون سختی قبر برای یک آرامگاهی معلوم میشه پس اینجاست که احوال متفاوتی میاد لترکبون طبقا عن طبق یعنی لترکبون یا محمد سماعه درجه بعد درجه و رتبه بعد رتبه في من الله تعالى سماا یعنی از نظر بلندی درجه به درجه قربت بیشتر میشه لحظه به لحظه بیشتر میشه اما فما لهم لا یؤمنون با این همه احوال و شرایط چه شده که ایمان نمی آورند اینها چنان از خدا به هستن هستند که آیات خدا خند میشه اون آیاتی که دستور سجده هست سجده هم نمی کنند و اذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون سجده نمی کنند مراد سجده اعتقادا و عملا هست یعنی تابع پروردگار نمی شوند خدا را سجده نمی کنند بل الذين كفروا يكذبون بلکه کسانی که کفر کردن تکذیب میکنه آیات را والله اعلم بما يعون الله بهتر دوند اون چیزی که اونها جمع کردند بما یوعون از اقاید و اعمال هرچی جمع کردن خدا بهتر می‌داند، فبشرهم به عذاب علیم پس اینها ها را خوشخبری بده به عذاب دردناک عذاب خدا بر آنها منتظر است، الا الذين آمین و عمل الصالحات، مگر کسانی که ایمان بیارند و عمل صالح انجام بدند، لهم اجرن غیر ممنون برای اونها اجری هست و پاداشی که قط نمیشه، مومینین عجر زیاد پاداش زیاد اما کفار در احوال سیء و احوال بدی هستند